ایران بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانی. به نام عزت یکتا با عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت همیهنان گرامی همراهان صدای امید به ویژه برنامه ایران ویج در قسمت 31 یکم این برنامه پژوهشی تاریخی در خدمت شما هستیم با حضور دو تن از پژوهندگان این برنامه و کاوش‌ناسان این برنامه جناب آقای سید کریمی و جناب آقای ستورنا فیروزی عزیز ما همچنان متاسفانه در این قسمت هم در خدمت جناب آقای مرتضی ایران مهر و سردکار خانم دکتر آزادی احسانی نیستیم و امیدواریم که دیگر از نشستهای سی و 32میادیه نهایتا 33 سی سی در خدمت این دوستان هم باشیم و مباحث رو به طور کامل ادامه بدیم ولی در این قسمت هم ما بیکار نمی‌نشینیم مجدداً مباحث خودمون رو درباره تاریخ را میانی ادامه میدیم یکی از حلقه های گمشده تاریخ کل قلم روی میانی و تاریخ ایران زمین که دوری جمشید بود و ما سند بسیار زیادی در موردش داریم ولی در مورد زمان و مکان اون بین پژوهشگران و مورخین و باستانشناسان اختلافات زیادی هست. در تاریخ ملل مختلف استوره های ملل گوناگون یک ای هست به اسم دوره طلایی که تقریبا در میان تمام اسطوره های مللی که حداقل در قلمروی میانی هستند این تقریبا یکسان هست. اون هم دوره طلایی است که ما در اسطوره های ایران زمین دوره جمشید رو داریم و یک مکانی به اسم ورجم کرد. خب حتما اونایی که رفتن پیشوای ورامین قلعه ایرج رو دیدن بعضی ها این قلعه ایرج رو در واقع نماده وره کرد میدونن ولی ظاهراً اونطوری که در اسناد کهان هستش وره کرد یک شهریست در زیر زمین یا یعنی در زیر زمین ساخته شده و به خاطر سرما بوده که ساخته شده و منطق تاریخی و منطق باستان شناختی و حتی زمین شناختی اینو میگه که مردمانی که اومدن چنین شهری رو ساختن زیر زمین قطعا از یک سرمایه طولانی یا یک سرمایه سخت و جانفرسا خبر داشتن و اومدن پایین و به گواه اسناد تاریخی زیر یک کوهی در منطقه فارس اینو ساختن از جناباقای فیروزی ما تقاضا می در مورد نتیجه پژوهش خودشون نتیجه مطالعات تاریخی خودشون در مورد وجم کرد اصلا وورجم کرد چی هستش؟ حالا در مورد خود واژه ورجم کرد و همچنین واژه هایی که مال دوره جمشید است از خدمت جنا باقای کردی می به عنوان کاشننااس زمانشناسی استفاده خواهیم کرد ولی از لحاظ باستا شناختی اصلا ورجمع کرد کجا هستش؟ شهر زیر زمینی م می میشه،, میشه ساخت اصلا چنین شهری رو بعد حالا، بقیه کاشناسان برنامه معتقدند که جمشید یک دوره هستش مالی دوره ای که قبل از یخمندان هست آقای ایران مهر میفرمایین که بر طبق پژوهش‌هاشون دوران جمشید از 17 از سا... سال پیش بدینسو هستش و سرمایی که در واقع جمشید داره ازش خبر میده آخرین دوره یخبندان هست پجوهش های خود شما بر اساس کتاب خودتون دوران جمشید حداقل 8500 سال پیش است پس دوره فلزات هم نیستش بشر اون دوره با چه ابزاری چنین شهری رو زیر زمین ساخته و چطور ساخته با چه, چه تکنولوژیش ساخته و با چه تکنولوژی فهمیده که چنین سرمایی در راه هستش با چه علم و فناوری هست زمن سلام علیکی باشه از عزیزی می فرمایید فرمایشت شما رو می شده درود بر شما عرضم خدمتون که من دوتون نکته قبلش بگم یکی بله. این که به با باور بنده و بر اساس قیاسه متون مختلف در فرنگ مختلف این شخصیت ها و این توصیفا و ایش وقت اسطوره نیستن چون نقشی از خدایان رو شما در این توضیحات و این را ندارید برای صدمین بارم تکرار می‌کنم دقیقاً یعنی شما مثلا چند بار گفتید اسطوره اساطیری این حرفا لازم دونستن اینو بله هم نظری دارن و نظرشون به نظر من برای این تاریخ ناشناخته ایران یا تاریخ بله. نوشتاری ایران، یا تاریخ, ایران یا تاریخ کوهن ایران خیلی بهتره دوران کوهن ایران خیلی واژهای بهتری است از اساطیر بله ببینید دوران جمشید یا روزگار فرمان روایی جمشید در متون بازمانده از از یعنی از گاتای جمشید که قدیم میتنی نشست بگیرید تا روزگار اسلامی. بله در همه اینها این آقا در روزگار فرمان رواییش همه چیز به سامانه فقط در مسئله وندیداد بله. و پشت سر اون در بندهش ما داریم که این آقا دست به ساخت یه ساز شهری بس ور جمع کرد می‌زنه. همونطور که میگه ور بساز. دقیقاً این توصیف اصلی وریس پرداشت در وندیدا فرگل دوم هست ولی در بندیش در حریخت دو خط نوشته شده. ببینید بله من از نظر من این 8500 سال پدورن هست چون اگر زرتوشا همون هز اواخر 1700 ده نظر بگیم طبق صحبتایی که شد این آقا چند تا پاچه قبل از پاتچ روزگار زرتوشت و دیگه 400 500 تا قطارش چیزی زیریش هم هست که چرا اون ادله به دست میاد و این سرما هیچ ارتباطی با این توصیف فایتی که و این حساب پای شرطی به یخمندان آخر و سوم و اینا نداره همون در این یخمندانی هست که در فلات و شمال شرقی فلات دشوار شده و این حرکت هم چه نوعی حرکت سیستماتیک و سامان من هست یعنی کنه انسان روزگار چیز داره فرار میکنه روزگار یخمنداره فرار میکنه به سمت جورو هدف میاد فقط می‌خواد از یک بلایی که دوشایش حسش می‌کنه فرار کنه. صدش میخواد می‌خواد به سمت افتاب. طبیعیه. درست. این شما در آمریکا یا قاره آمریکا می‌بینید چرا به جنوب اومدن وقتی از سیبری وارد قاره آمریکا شدن؟ چرا به سمت جنوب گسترش پیدا کردن و در شمال آمریکا شمالی تمدنین ساختن؟ برای اینکه شمال سرد شده بود. اینا مجبور بیا به مرکز جنوب، اونجا تمدن‌ها رو ساختن. عشاره مصادف شده با عصر یخ بندان دقیقاً همین حالت رو داشته ولی در داستان ورجام که بجمشید یک حرکت هوشمندانه در انجام میشه کشور سرد شده در نقطه ای میاد در نقطه گرمتری یک پناهگاه می‌سازند اون پناهگاه منطقه‌ای همشنان سده که اینا بعد بنزید یه کوه بسازن یعنی هر کاری توصیف شده هوشمندانه است برنامه‌ریزی شده است چیز نیستش فرار و نماد و این حرفا نیست بعد توصیفی که برای ورجام کرد میشه خیلی جالب هست. خوب که بعد برسیم که حالش چطور میتونن چیزایی بسازن یک ساز شهری سه طبقه بله دارایی 9 پل در یک طبقه 6 در یک طبقه و سه پل در یک طبقه دیگهه در این طبقه پایین سه پله و 36 پله بالا نه پله در زیر هر پل تعیین میکنه که چی قرار داده بشه حالا در وندی داد فرقه اون جزارش هست در چهار گوشش میاد استبل تعبیه میکنه که ستوران و گاوان و گوسمندان اونجا جا بده همه در اون آبراه میکنه دری داره خود روشن که من اینو حتی در وندیدات هستش که از قل زرطوش میپرسن که حالا این خود روشن یعنی چی پاسخ بهش این خود آفریده اگه بخوایم اسطوره نگاه کنیم که خب هزار تا قصه میشه بافت ولی من مثلا یک شاهی در چین براش پیدا کردم که در اونجا یک وضعیت خود روشنی وجود داشت این قبر شی هو هست نوس امپراتور چین سوان هست این قبرم با... کش شده ولی بازش نکردن باورهای محلی چینی ریزو باسه موتور میدونن که اونجا روغن نهنگ قرار دادن مش الهار روشن است این روغن دیرسوزه دوست. و سقفم جیواس ستون‌ها جیواس دیوار جیواس و این محوطه تا سالیان سال روشن خواهد بون به وسیله خودش این چه خود روشن است ممکنه اون تکنولوژی اصلا روغن رهنگ و جیبکاری هر سطح سیقلی سنگ و اینا بوده باشه ما نمیدونیم ولی این شده نیست يعني اجل عجب اسطوره ای نیستش خب این بنا که زیر کوه ساخته شده ما ف... تا قبل از این باستانشناسی شناسی 5 6 سال اخیر فکر میکردیم که یه قصه است ولی شهرهایی که آقایش سال 2013 دوازد و ترکیه پیدا شد و چند تاش تو ایران دارن از زمین. کیش بگیرید یه شهر زیرزمینی جدیدی هم هست خیلی قدیمی نیست تا نقاط مختلف فلات مرکزی ایران ما این شهر های زیرزمینی رو داریم دالون ها کندن یا نمونه های هم داریم که مثلا ما دالون‌ها کردیم سکونتگاه های ما داریم در ایران. ولی این چیزی که در ترکیه پیدا شد، حتی بقیه از صاحب نظرات قاربی رام به این بر که ور جمع که توصیف شده اینجاست. این هست. آبراهد داره. جای زخیره داره. و جای گسترده هستش. که بعدا حالا بعضی گفتن که آقا این معماری معماری ایرانی هست ولی نقطه به هم نمی‌خوره. و این خیلی جای به به این بیشتر نزدیکشان تا ما ایرانیان به باور اینکه ورژن کردی وجود داره. و سازنده اون جمشید اما اینکه چه جوری ساختنش انسان نوس حتی ببینید حالا قصه 17 18 هزار سال که دیگه اصلا هیچی ولی همین که 8500 سال من بحث میکنم میشه اصلا نوسنگی دقیقاً بله یعنی خیلی شاهکار کرده باشن یه داست سنگی ساخته داسی مثلا از دسته استخون ساخته و یه تیغکی هم زده از سنگ جلوشو این این دیگه اوج تکنولوژی است یه سفالی هم پختن این مثلا مثلا یه فناوری انسان نوسنگی میتونه باشه دیگه برای ما توصیف شده ما زیاد داریم خط داریم در چین نوسنگی خط تعلیف در بلغارستان مجارستان خط تعلیف داریم در یونان خط تعلیف داریم روزگاه نوسنگی معماری تپه س... کاملا با نقش بردست های شبیه تخجمشی قبل از این قضیهی 8500 سال چاتال هویوکو داریم در همون نقطه ترکیه امروزی با نیایشگاهی کاملا شگفت آورد یعنی ما این مواد استثنا رو دارین و ما شاید حالاتی از برکس باشه ما خیلی نوسنگی دست کم گرفتیم یعنی بله خب ما می میدونیم که عصر آهن پرو خیلی جلتر از عصر آهن برزیله یعنی مثلا در پرو امپراتوری شکل دارن راه هم ساختن معبد هم ساختن 200 کیلومتر شق بیایید هیچ این آدم‌ها لباس هم ندارن تا زمانی که اسپانیایی‌ها وارد شدن تا 400 500 سال لباس هم نداشتن یعنی ما نمیتونیم اینو یه قانون کلی بگیمیم برای جمع کرد توصیف شده در که اینها با یک سری ابزارهایی که ما نمیشناسیمشون میگه یکیش اشتراس یکیش سووراس میگه با یکی زمین رو در واقع بکم با یکی خراش بده ما نمیدونیم اینا چی هستن واقعا نمیدونم اصلا لودر بلدوزری بوده اصلا نمیدونم از شما موشک بگیرین میخواد باشه برای خودش میخواد اسباب اساسی سنگی باشه ما چه میدونیم اینا چی انکه اینا اسوره حالته اسوره شده قصه شدن دیگه هر چیزی بود ما نمیدونیم که بعضی از این دست خدایان هندیه واقعاً در از جهان حکومت میکنه این قصه خیلی اسطوره‌ای است که من میخوام حالا بیام ریس پردازی کنم ولی من میدونم این شهر و این ساز شهر منطقی هست که ساخته شده باشه چون شوالیه باستان شناسی شو داری یه نکته ای که فقط درونش هست و این خیلی شگفت آوره ولی امکان پذیر نبوده که این پیاده بشه این ده هست ده. که برای اولین بار در فرگرده دوم از صحبت از گرد آوری تخمه ها میشه این تخمه ها رو ترجمه کردم به نجاتا نه اینجا اون مسئله نیستش چون در بندهش دقیقاً ریزش رو میگه این قضیه چیه اینجا میاد قبل از ببینید چند بار میگه جمع کنید گناه های زنده رو مثل داستان نو مثل داستان نفیشتین سومری و هر کسی باشه بیار, مشمول رو بیار کن. ولی در بسه تخمه ها رو جمع کردن اشاره میکنید تخمه های بهترین یعنی بهترین رو میاره زن و مرد بهترین بس های گیاهان بهترین تخمه های جانوران. جفت, جفت. به چین کنار هم و در میان اینها گوش پشت و کیاک و کیاک و کیاک بیماری دار و راه نده دقیقا اصلاح نجاهدی دیگه دقیقا بالاتر از اونما فکر کنم اینا گامت شناسی میدارن میکنن ما در بونه شده شکل گامت رو می توضیح میده این برای من قابل پذیرش نیست که در انسان نونسنگی اینا رو با بدونه ولی این یه نکته برای من داره که اینها تو این اندیشه بودن که در واقع اون مایعات تناسلی و تولید مصرو اندیشهش بودن که با این ذخیره سازی اینها میتونن حیات آیندگانشون رو تضمین کنن تولید مثلی به این فکر رسیده بودن این شناخت رو رسیده بودن و باز این داستان اسوری نیست این اندیشه است تجربه است درست من بقی صحبت علمی هستش که دقیقاً گفتم دو دور بعد حالا یه سوال کوچیکم از شما دارم درد دو دقیقه اینو توضیح بدید خب حالا این سرمایه دوره یک سرمایه که جمشید خبر می‌مینه این سرمایه‌رم یخ بندان این سرمایه‌ای که مال دوره کیخسرو هستش این را هم شما دید. همون سرمایه‌های کاملاً سرمایه موقتی است نه پس داره نه پیش یعنی باز مال جمشید پیشی داره کاملاً این آقایون این آقا, آقا افسورده میشه از روزگارش مثلا خیلی پادشاه ایران قبل پسش میره به یه کوهی میخواد جدا بشه و به پهلوانا اطرافش هم میگن که آقا نرو چیز بمون اونجا الان میخواد کولاک بشه ابرارا رو نهایا کن داره چیز میشه و فلان میگه من میرم شما نیاید چند تا قبول میکنم برگردن چند تا قبول نمیکنن برگردن باهاش میرن باز شب آخر کیخسرو اینا رو جا میذاره و میره که سینو نیبینه که چه بلایی سرش میاد ولی اون پهلوانها ها دور بوران میشن می میره بوران خود ارتفاعات کوه دیگه شق القمر نشوده که بوش خیلیام البته خب دوستانی که معتقد هستند که در واقع سرمای دوره که خسرو هم یه سرمایی بودی که حالا دور سرمای یخمندان آبادی یه سرمایی بودی که تو نیمکره شمالی این موضوعات ببخشید بلد. این موضوع من اگه این آدمای مسخه‌ای می‌نازه که کشف علمی مثلا جدید میشه بعد می‌خوان تو کتب مقدسشون اینو پیدا کنن بله اصلا انسان کهن به این چیزا فکر نمیکرده دقیقاً خیلی ما دلایل شمارم بله مشاهده کردیم شنیدیم البته ببخشید امیدواریم که دلایل دوستان دیگر رو هم بشنویم و به یه جنمندی برسیم حالا شاید طول بکشه شاید سیچلت برنامه طول بکشه به یه برسیم ولی باید این بواید مطرح بشه و بدون تعارف نقد بشه و در واقع سوهان بخوره همه یه جناب آقایی کریمی عزیز ما هنوز دلایل کامل شما رو در مورد مکان ایران ویژنو درسته حالا مباحث آقای فیروزی در مورد وره جمکرد هستش و ما هنوز مورد مسائل تاریخی به شکل ملموس و به شکل زنجیروارش نشدیم چون از اول هم قرارمون این بود که در زنجیری تاریخی که داریم اون قسمت ها و اون نقاطی که در موردش سند وجود داره اونها رو مشخص بکنیم دونه بدونه بعد اینها رو با خطکش این نقطه ها رو با خطکش به هم وصل بکنیم بعد تاریخ ایران یا تاریخ این قلمرو میانی رو از نو بخونیم ظاهرا شما یه سری مسائل و عرض به حضورتون که مباحثی در مورد خود مکان ایران ایرانوچ هنوز مونده از شما اینها رو بفرمایید و اگر ابهامی از مطالب گذشتتون داریم و فکر میکنید که باید توضیحاتی بهش بیافزایین در خدمت شما هستیم بفرمایید به نام خدا با درود فهوان خدمت شنوندگان دوستان و مهمانان گرامی در مورد جایگاه ایران ویش من ترجیح میدم که جناب آقای ایرانی هم باشن چون فکر میکنم اونجوری درست‌تر باشه از ناز اخلاقی که بتونن از خودشون دفاع کنن من تو همین قضیه جمشید و ور جمکرد و و سرماه میخوام این مطالبی بگم بذمه شما هر شد که ور جمع های ور از ریشه پوشاندن که ریشه هند به قول اروپاییه که ما میگیم آریایی نخستین ریشه ور یعنی دوستان ببین استاد ای که به از و در اوستایی در ریشه هند اروپایی که ما میگیم آریایی نخستین به ا تبدیل میشه میشه ور ما چهار تا واژه ریشه هند اروپایی داریم که ریشه ور ان که کلا با هم فرق میکنن یکیشون اینه که به پوشش دهند است درست ور یعنی پوششه که زیاد هم داریم تو حتی تو واژه عوسه‌ای بسیار داریم بعد خدمتشون هست شد که جم هم که از همون روشه یمه که یهایی که ما تو حتی تو پهلوی هم داشتیم به فارسی که رسیده شده جه واژه کرد آریشه کر اوسی یعنی ساختن که باز دوباره در ریشه هندوپرایش کر میشه یعنی ساختن که الان تو واژه دستگرد داریم یعنی چیزی که در با دست ساخته شده طبیعی نیست که شده دست ور جم کرد یعنی پوششی که جم ساخته کسی پوشش دهنده پناهگاه خدمتشون هر صورت که همونطوری که خدمت می گفتم من ترجمه میدم که جایگاه ایرانویچ و جناب آقای ایرانمر و خانم دکتر احسنی تشریف داشتن اونجا بحث بکنیم در مورد سرما من کاملا بر این باورم که این صبا نه به هیچ عنوان اینجوری نیست این سرمای همان اسری یخمندانه دلیلش چیه دلیلش اینه که من چند باری متن خونده خوندم ولی باز فکر کنم نیازی که بخونیم قرار شده که از دانشای گوناگون استفاده کنیم دیگه وقتی میای میگیم دانشگاه گونه گونه استفاده می‌کنیم پس بر حرفا هم گوش بدیم یک در مورد خود ور جمع کرد یه سری ها هست که الان من باید که از دوستان چند تا از دوستان انجمن زامی سیاسی همراه کردیم بعد اونا بیان نظر بدن تا منم نظر کدی آخر سر بگم که انسان اون موقع چطور تونستم همچین چیزیو بسازه در مورد سرما ببینید کشور اینا همیشه اصلا در حالت سرما بوده یعنی سرم مثل اردبیل براشون خوبی بوده کشور ایران ایران, ایران, ایران, ایران بله. یعنی سرمایی مثل اردویل براشون عادی بوده ولی همون جا که میگه 10 ماه زمستان دو ماه تا بستان ولی یعنی همین نمیخون کی... داره با... چون سن دفعه خوندم ولی باز فکرم نیازی که بخونیم یکی از ایراداتی که من تو بندهشت میبینم نسبت به ور جمع کرد اینه که در عوستا میگه با گل بساز اینو درسته ولی در این میاد میگه کنده شده در بندهشت باید ببینیم کدوم درسته اقلانی تر به نظر میرسه برای همین میگم یه سری هایی هست بله. باید با متخصصینش صحبت بکنیم اگر میشه فقط نظر شخصی حال حساس هم هسته چون... بالاخره. اگر با گل ساخته بشه مردمی که با گل هم داشتن چطور میتونستن کوه که معمولا زیر کوه هم معمولا با سنگ به این سادگی نمیشه هم همین الان هم مثلا الان یکی از معضلاتی که ما الان توی ساخت آزاد راه تهران شمال داریم تونل هایی هستش که زیر کوه هستش معمولا سنگ اصلا کم نمیشه واقعا سخته یعنی اینجوری نیست که مثلا درست حالا مدیریت در ایران بعد از انقلاب خیلی مدیریت ضعیفی هست تو راهسازی و توی عمران آبادی ولی واقعا من خودم رفتم بعضی جهاش رو دیدم جایی که مثلا شهرستانک هست اوائل چیز واقعا سنگ های بسیار سخت یا اصلا متر به متر سانتیمتر, سانتیمتر دارم یک کار رو یک از رازار رو من به شما بکنم که ریزه کاری که می کار کنم همینه که بدیم اون قسمت که ما میگیم ایران ویجه بله. چین خوردگی اونجا سنگاش به چه صورته آیا تو اونجا کنده یه جایی ز... از اینجا توقف می‌کردید شما با آقای فیروزی در مورد مکان ایران ویش توافق دارید؟ بله من توافق در مورد مکان ورجم کردم با هم توافق دارید؟ ببینید ورجم کردم من ترجمه برای این میگم چون بعد آقای ایران مهر بیاد نظرش رو بده نمیگم نه مکان برای ت... وره... مکان ایران ویش ایران ویش, ویش من, من ده... ده ایران رو شمال شرق میدونم ورجم کردم همون شمال شرق میدونم ولی آقای فیروزی فکر کنم ولی اجازه بدید آقای فیروزی در حد دو یا س فقط مکانه برای کرد شما بگید حالا می دونم به صحبتای ایشون اعتراض دارید ولی ترجیح بدید که ندارم من ورجم کردم در وندیدات بله جاش گفته شده فقط نار. انجامنی که تصمیم می گیرند و ایران وچ هست تصمیم می که اونجا هم چیزی بسازن خب درسته ولی جاشو نمیگه در بوندهش هست که جاشو میگه زیر کوه چمگان در فارس در چمگان در فارس مکان فعلش هم میتونید بگید هم ما همش شو... چمگان امروزه نمیشناسیم نمیشنس. ولی فارس رو میدونیم که مکان منطقه مستر... پارس قدیم هست پارس قدیم مثلا در بوندهش استان پارسه آه. همین استان فارس فعلی که ما الان داریم بزرگتر از این بوده ولی حدود همین هست همین حدود ها هست ولی ما نمیتونیم بگیم جم... ام... شما تو آسیا میانه مثلا داره وایس صحبت میکنه که آقا سرما بیاد بعد به تو فارس نه نه نه اجازه من فقط یه این کوه چمگان بله. شما کار... من خیلی دنبالش گشتن خ... اصلا پیدا نشد ببین نتیجه این هیچ نتیجه نتیجه تو این منطقه نسل. فارس شما یه سری کوههایی داریم که مثلا میشه بهش تشابه داد من با. با بومیان فارس صحبت کردم اصلا هیچ چیزی نزدیک به این وجود نداره پس باش آقا کریم پس صحبت های آقای کریم هم بشنویم که مکانی برای جمع رو کجا میده و بشه دلیل اونجا رو میدونن من چاپه بندیداد میگم بله بند بفرمایید وقتی دوره در ایران ویش اینو مگر اینکه بپذیریم ایران ویش ارادی که ما داریم از چیز میگیریم بندهش میگیریم همینه که بوندهش یه چیزی ایران یه جایی, جایی میگه و جمع کرد جای دیگه درست در صورتی که ما مطمئن نیم که که ورجنجک در خود ایران ویجه حتی تو بوندهش من فکر کنم نمیدونم حالا از یکی از اساتید چند حتی یه جایی ایران ویج رو همین آذربایجان کنون رو میدونه بله بله <تصفح> گفتن <تصفح> بله. تا همون بوندهش نیده گفته دقیقاً بوندهش بله. گفته و یه سری از اروپایی هم این نظر داشتن ولی خب دیگه الان میتونم بگم این ترج شده است درست این که من میگم ادامه داستان ببینید ما گفتیم وندیدات باید بشناسیم فایلارو فعل امپرفکت چیه؟ کجا داستان تمام میشه؟ کجا داستان که ادامه داره بند قبلیه؟ همه اینا تا. مثلا همین میگم بعد آها ایران, ایران مهر باشن چون بعد اونجا ما اینسترار روی کنیم به خاطری که دلیل اصلی ایران ویش که میگیم اونجاست و بعد دلیلش اونجا بگی. بله خدمتشون عرض شد که در وندیداد میاد میگه چی؟ میگه من اهورامزدا در بهترین جایگاه ها و شهرها که آفریدم نخص ایران است که دارنده رود هدایتی است. و اهریمن کننده در آن سرمایه دیو داده پدیدار کرد. آنجا 10 ماه زمستان و دو ماه تابستان و در آن دو ماه آب سرد، زمین سرد، گیاه سرد است. حتی تو اون دو ماه تابستانش تو... این فرگد اول هست، بله. این ده نظر بگیرید. بله. اصلاً حالا همش صحبت خواهیم کرد اول اینکه این, این کوچکی اینا کردن من با آقای رامخ توی زمین موافقم. به دو دسته بوده. یکی اینکه اولین کوچیکه اینا کردن هرگز به خاطر سرمای نبوده، به خاطر گسترش جمعیت بوده. بله. اون گستردگی سوارشون که بزرگم بوده این سوار گسترش پیدا میکنم به خاطر گسترش جمعیت بوده ولا غیر من اگر صحبتی داشته باشم بذارم آخر سر یا همون آخر نقطه آخر سر نه بعد تو بعد یه... اه... که کاغذ شما بگیرید و یه... یاد داشت بفهمید این تا اینجاش میگه در آن دو ماه آب سرد، زمین سرد، گیاه سرد، هر ستاره گفته. حالا که با دقت بسیار. بله. همین رو داره مینوی خرد آورده. مینوی خرد این متن پهلویه. بله. بسیار مهمه. چند تا از متون پهلویه ما بسیار مهمه که مینوی خرد، یکی متن پولیوت و یکی هم یادگار ز ایران. این سه تا حال برام میگه بسیار خیلی, خیلی مهمه. مینوی خرد میاد میگه زمستان زمستان دی بر ایرانوی چیره تر. و از دین به حجم یه از دین پیداست منظورش اوستا است می از دین پیداست که در ایران ویش ده ماه زمین سرد و آب سرد و گیاه سرد و پتیاره زمستان بران چیره این من چند بار خوندم ولی فکر کنم دوره باید این بخونیم متخصص زمین شناس هستن که کتابی نوشتم به نام اصر یخبندان نویسنده روز وایلر و جرالد ایمز درست ترجمه حمید قروی آیا شما نکرده روی 38 تا چهل میاد میگه جنگل‌ها در کناره‌های اپاختری اپاختری یعنی شمال بله. ستاره باختار که هم ستاره قطبیه جنگل‌ها در کناره‌های اپاختری قاره به دسته های پراکنده از درختان کوتاه هستند پس از آن درختان کوتاه نیست دیده نمی‌شوند و جلگه درخت سفید و همواره تا کرانه های دور گسترده می‌شود جلگه زده دو هنگام بیشتر ندارد زمستان که ده ماه به درازا می‌کشد تابستان که تنها 2 ماه است دقیقا همون چیزی که داره بندیداد میگه. حالا این برای چی؟ در عصر یخبندان داره میگه. میگه در تابستان های بالایی یخ آب میشد اما لایه‌های زیر زمین همچنان یخ میمانند خاک یخ چون سنگ سخت از روییدن گیاه و فول رفتن روی زمین خاک جلوگیری میکند. میگه گیاه سرد هر دوتاشون هم در میره خرد. اصلا واو واو بشه. درست. من چند تا دیگه دلیل دیگه هست با چانت واسازم شاست دیگه هم صحبت کردم کاملا تأیید کردن حالا به امید خدا حواشی هست میخوایم اینو برگزار بکنیم در این که این اسو یخماندان کوچکترین شکی نداریم بله اصلا ببینید تمام اتفاقات بعدی که میاد در آخر هزار آخر دور بساش اینا تداعی میشه دوره زهاک دوره زنده میشه دوره زهاک زنده میشه کش و کوشدار میکنه. دوره دیو سرما دوره برمیگرده اینا سرما عادی نیست یعنی بدترین فرضیه‌ای که سر هندو ها اومده که ما میگیم ها الان جالب اینجاست دو تا از اسل من ب... میگفتم که جمشید و نیای همه آریایی‌ها میدونستم نه فقط ایرانی ایرانی‌ها دوستان گفتن نو متعجج نمیشیم منظورتون چیه ببینید زبانشناسی داره میگه که آقا این سندایی که دست ما هست که ما میدونیم زبان هندورپایی دست سو زبانش چه بوده تصریفی بودن و نرم 8 تا داشتن و اکوزدفی، اکوزدفی و, و فلان همه بعد خدمتای شما هست شاید که صرف فلاشو میدونیم چه جوری بوده ها رو میدونیم چجوری جوری گفتن آقا ما میتونیم بگیم که هزاره م کهن زمانیه که میتونیم بگیم از هم جدا شده یعنی اون کوچ بزرگشون که زبان هاشون ما ازشون سند داریم از سلتی بگیرید گوتیک بگیرید اسلندی کهن بگیرید اسلاویه کلیسایی بگیرید همه اینا همرو که جمع هم گفتن 1004 پیش از میلاد اینا با هم بودن بله وقتی ما دریم میگیم آقا این عصر یخ بندانه یعنی چی یعنی اینکه آقا این موقعی که اینا هستن اتفاق افتاده یعنی این از هم جدا نشده بودن برای همینه بسیاری از واجه هایی که بنیادین بشر بعد اون رشد تکامل رو یافته باشه که بهش برسه با هم اشتراک داریم ما بعد خدمتتون عرض کنم که چند تا نویسنده اروپایی الان ما شنیدیم که دارن این کار میکنن خاطر ما گفتیم بچه ها بیان کسی مترجم هست برای اسکاندیناوی به ما یاری برسونه تو کشورهای یکیشون نروژه یکیشون هم سوئد بله. اونا هم دارن مقالهاتی می در مورد جمشید که یمر خودشون خودشونو میگن آقا اصلا با جمشید برابره و کهنترین و درستترین ترین ایرانی است حتی اندیام نیست هم من از کریستین آنسن ایراد زیاد دارم ولی تو چند جا خیلی خوب کار کرده یکی از اونجاش که داره میگه که به سندوی جمشید دست هندیا نیست دست ایرانیاست هندیا خیلی بردنش تو دو. افکار خودشون بله تو توهمات خودشون ببخشید همین حرف ما می‌گیم که شاید که تو سواد بودن کار کردن زدن گفتن آقا ما میخوایم ادامه بدیم راهو این کارو خب البته هنوز به دست ما نرسیده فقط خبرش ما می‌دونیم شاید خب ما گروهی که درست کردیم میخوایم ادامه بدیم با امید خدا تا چی میشه من حرفی ندارم فقط میگم. باز با آقای دویتر مالو تماس حاصل کردیم زمینشناس معلوم بله بله. بله. رو بعد با انجامن آمریکا امریکا همان کردن چند تا از دوستان تو زمینشناسی ایرانن، با امید خدا این اصیح اخباندار به جایی خواهیم بسیارم این ها فیروزی ما حدود دوازده دقیقه وقت داریم برای این برنامه از بزرگتون که برای اینکه مثل برنامه های خیلی حالت چالشی و بعضا حالت در واقع بگو مبگو و سرکله هم زدن نباشه من یه چالشی رو در مورد فرضیات شما میخوام مطرح بکنم اصلا خب بله شما قبول نمی که این سرمایه طولانی سرمایه در واقع دور یخمندان باشه این سوالی که میخوام مطرح بکنم خب توی تاریخ جغرافیا تاریخ اقلیم شناسی چه نوع سرمایه‌ای دارند مثلا یه سری هایی که مثلا 50 سال 100 سال چند سال بود بالاخره این سرمایه‌ای که مثلا به خاطر اون فرار کردن بعد چجوری اینو پیش بینی کردن از کجا پیش بینی کردن و چند سال بوده و دلیلتون چیه آیا در مورد تعداد سال‌هایی که این سرمای بزرگ در واقع میاد حالا 20 سال 30 سال 50 سال اصلا 2 سال سه سال شما هم سند دارید خب حالا دوستان دلایل خودشون رو بر اساس مثلا زمین شناختی و در واقع اسنادی که از زمین شناسان هستش اینو میگن که میگن این سرمایه یخمنه متاسرمایه ی هزار ساله بوده اصلا حالا شما دلیلتون چیه و و تعداد سرمایه‌ای که وجود داره هست چند میدونید به چه دلیل وایسانی در این مورد هست یا نیست یادتون باشه من خودم یادم رفت بله که یه نمونداری خدمتون بیارم جلسه بعدی بله. سرمایی هشتزار و خوری سال بعد از یخبندان که فلاتو درگیر میکنن نشونتون بدن یعنی چند سال یعنی و سالی که من اعتقاد دارم به اون بله. ماسوا جمشیت هست یعنی میشه چهار هزار سال تا و سال, ب... سال دو هزار و سال بعد از اصر یخبندان, یخبندان. دو هزار میاد پایین در منطقه ما به ویژه اینو من خدمت نشون میدم که تا ببینید که دقیقا وندیدار داره درست صحبت میکنه و از بعد از رایخ بندان صحبت میکنه و از نظر زیستی هم من من زیستشناس که دو تا زیست زیستشناسی پاس کردم در واقع قول معروف تو کتم نمیره که بشر نوسنگی بله. به طور کل در کدای ژنتتیکش میتونه اون تجربه سرما رو نگه داره سردش میشه ماش سیخ میشنوز میتره مای سیخ می شنوز این ولی در, ای در حافظه مقدش نمیتونه یه مقالیم از شما دیدم دلیل اینکه توی توی پوست سفید پوست ها یه خاصیتی هست که تو پوست سیاه پوست ها نیستش این دلیلش دورره یخمنان هستش اونو اون اون دل یه باردیگه شما می کلیت بح این هستش که اصلا چرا سفیددی و سیاه پوست ما داری به خاطر زاویه است دی که اضوی تابش خورشید در نقطهگی قراریت اینکه خیلی ساده است درست این تجربه ژنتیکی است که توی ما بچه هامون هستن و خطر از اون سمت برای سیاه شدن وجود ناجده بشه این به ارث میرسه این سفید بودن سیخ شدن پوست و مو و این چیزا می چیز کلی تره مال پستانداران هست و این مثلا ما سردمون هم میشه موهای دست هم همچنان سیخ میشه اینا که کردن عصر یخبندان انسان وجود داره انسانای با عصر یخبندان کلا با سرد شدن زمین همراه بودن همه زمین سرد شد به حال دیگه حالا مثلا به ها زماش کمتر شده تقیی نمیکنه که یخ نداشته اینا در کتایی ما هستن ولی مغز هر انسان رفرش میشه من هرچی داده جمع کنم به پسرم نمیتونم انتقال برنم مغزمون مغزش از صفره این تجربیاتم هم به همین صورت این به ما فکر کنه انسان رو سنگی قلم داشت یا فکر داشته که من الفرار کردم و رفتم شفته زدم و این الفار. پس یعنی دلیلی وجود اصلا... که مغزه که مغز یک ای انسان در چند نسل خلاف... به تکامل انسانه خلاف طبیعت هست این خلاف از سیستم مغزی است این چیزا این داستان های بچه ها به نظر من نخواهد بود اون نمودار من بیارم... میگم حالا نمودار زرد پوست بودن هم نتیجه دقیقاً چرا شمال اومدن پوست به رنگ حالا استوری که ما میگیم زر رنگ زرد آفتاب که نیست ولی استوری که ما میگیم زرده زرد دیگه بله راهبر این که پایش سیاه اقیانوسیه بود نه سیاه آفریقایی سیاه دگرگون شده دقیقاً بله علت این بوده همه اینا فلسفه تکامل زیستی داره و سازگاری دلیل داره و من میگم زیست شناسیش باور نمی که مغز بخواد نمیذاره یاد بگیر حالا من یه سری نکته میخوام خدمتتون بگم ببینید چندین بار این صحبتشو من پاسخ دادن که کشور جمشید میگن سرد نبود و دوچاره سرمه شده اصلا اینطور نیست و اون نمودارام دید کشور جمشید سرد بوده و دوچاره سرمای افتضاح تر میشه یعنی خیلی که دیگه اصلا زنده نمیموندن بله یه تیکر خالی میکرم مملکتو و ما میگن که شمال شهر بوده و بردم به جنوب که فارس است درست میگه بله. ولی چرا میگم این دوچاره سرمه شده بر که واحد شماره زمستانه تا قبل از این سر ما میگه 300 سال زمستان آمد ال شد 600 زمستان آمد حالا اعداد اسطوریه ولی واحد شماره زمستان این به سال تحویل هم رفی نداره به جو امشید نوروز زن رفی ندین حفه اسطوری بعداست این 600 زمستان یعنی احتمال نمینی که 600 سال هیچ وقت این اتفاق نیفتاد این اعداد س... قدیم اسطوری شدن این که طبیعی هست ولی واحد شماره شده. زمانشون زمستان بوده ز... زمین سرد بوده بحار نگرفتن، تابستون نگرفتن، پاییز و خزان نگرفتن، شب و روز نگرفتن، چه میدونم سی شب گذاشت نگرفتن سرد بوده این کشور و آخر سبه می میگه چنان سرمایه بیاید که پایان ندارد. ایش که زنده نیمونه واحد شماری زمستونه بعد از این بگذرین که ندوه هندوستان آب و هوا خوب بوده جمشید ممیدی گل و بلبله بله مردم هندی همه رو گرم میدیدن بعد انجمنی تشکیل شده در اعنید داد ای است اهورامزدا میاد اعلان خطر میده ما این همه جام داریم ما در این در تاریخ هم داریم یعنی خیلی از پادشاهان دوران تاریخی شناخته شده از عکد بگیرید تا خود ماها میگن خدا اومد به من الهام کرد که الکامیکش همورابیه قوانین هم خدا اومد به من داد عکسش هم و شمش اومد که این چیز اسطوره اسطوره مذهبیه ما تعجب نكنی اور مزمود آلارم داده ما چه موجودیت هم نداریم که اینا چی دستگاه هواسازن داشتن لرزشون گرفته تب کرده مردن به هر دلیلی مملکت دوچور سرمای شدیدی میشه انجامنی میگیرن در ایران وچ که در این انجمن خدا میاد باز اسطوریه ولی بردن تو فارسه ولی نمیشه انجامن انجمنو هر جا گرفتن همونجا میسن بی معنی حرکت دو بعد هیچوقتم فکر نکنید که انسان نوسنگی یه جا بوده چطوری حوزهش رفته ما اینقدر فرهنگای نوزنگین داریم از ناک و شروع میشه حوزهش تا جای دیگه ما فرهنگ نوسنگی فراتون خیلی خیلی هم شبیهه یعنی یکی از چیزهای جالب فلات ایران همگنی فرهنگ نوسنگی چون یعنی فرهنگ نوسنگی تو زده، چه تو شرق چ تو غرب یکی یعنی يعني... خیلی نه خیلی نه. مثلا دیگه کپی پیست نیست در واقع شباطه زیادی داره یه مثلا این نواخته مثلا اینور اگه داست ساختن اونورم داست بوده اونور اگه سفال نخودی بودیم اونم سفال نخودی بوده سفال منقوش بودیم اونم سفال منقوش بوده حالا با علاوه بوده, بوده اونم مربا بوده در این مورد با آقای ایران مهر شما موافق هستید یعنی این خیلی جالب هستا ببینید مثلا همشین همگنی نوسنگی شما در هیچ جا پیدا نمیکنید حتی در میلیارون که یه مت ده پیدا نمی هم که و ولی ده فلات پیدا می‌کنه درست آره اگر تو انسان نسنگی حاکم سیستماتیک داشته در سقوط یخسر درفواس رفته اون چیز عجیبی نیست بچه ارتباطی داره ما هی میگیم که ما با انجمن زمین خدا زمینشناسه بیچاره یکی ما باهاش صحبت می‌کنه تاریخ نمی‌دونه که ما, ما دارن اقفالش می‌کنیم ما ما صحبت کنیم با اقف... اقفال هست واژه اقفال من بکنم. چرا اینکه ما می‌گیم که بله این ده ما زمستان از اون دو ماه تابستان است و اونجا اینطورید آقا چه ارتباط آقای خانون روز وایلر مقیمار من رو میشناخته ممیمار ممیمار خانون خانون اجازه, اجازه بفهم اولا سمت. که فرگرد اول وندیداری شد فرگرد دوم وندیداری که دو داستان جنفشی نداره دو داستان متفاوت یکی سرمای سرمای یخمندان فرگرد اول خواستگاه اولی یخ زدن در رفتن این درسته سرزمین ها میان جنوبتر و ق یگی وندیدا فرگد دوم داستان جمشید دو تا چه رقتی به هم دارن اول 10 ماه زمستون فرگد اوله شما تو ایران ویج دومین داستانه بکنه جمشید اون قبل از کیومرسه این بعد از کیومرسه تا پادچه بعد. بعد یعنی کشور... معتقد یعنی معتقد که بعد کشور دو چهار 10 ماه و دو ماه تابستون میشه کشور این شکلی سوندی داشت میگه خیلی گله بلبال بود اهریمن میاد به همین رز 10 ماه زمستون میشه و ما, می ما تابستون یعنی شما معتقدین که ایران ویج و قبل از کیومر ساخته میشه اصلا این خاکستر اولیه است خاکستر به است بلکه میون به جنود پادشاه پیداشون میشه درست درست ارتباطی ما در بین اولی با, با کدوم چسب و سیریش میخوایم فرگد اول به فرگد دومو بشسونی من اینا با کدوم چس میخویم بریم بشسونی دو رو خیلی متشکرم جناب آقای کریمی به طور خلاصه یه چیزی حدود 5 دقیقه شما فرصت وقت برنامه اینقدر هستش 5 اینکه فرگد اول و دومو ما که گفتیم ما میخوایم هموایش بزنیم پاسخو همین دار ما در زمین مسابقه خواهیم داد منم زمین مسابقه هموارش کرد تقریبا زمین مسابقه ایش هم اینجا است توله استادهای اصولشناسی و سوالشناسی نه اینجا اینجا فقط برای شنونده بله مسابقه اصلی اونجاست بعد خدمتشون حشرت که این سرمایه‌ای که شما فهمید 8000 سال بله اعتقادی که از کسی گفت همین خدا گاهی چیز بود خود دکتر مانو برویران دار کتابشون رو بردن کتابشون رو روی 58 کاملا توضیح دادن و بعدا گفتن که او تو این کتاب میگن ما نمیدیم که آیا اینه یا این سرمایه که میگیم اینه یا این 14 هزار ساله یعنی حتی این هم امکان میگه یه یه امکان بق... میده که مثلا نظر آقایی این برای آقای بوده، این ماله تحقیل هم میتونم بگم سال 1376ه کتاب سال بل. بل. یعنی عالی در ودود چیز... سال قبل از کتاب بله. این ولی یک بندی بعد از بندی داده هست که من اون دفعه اومردم خدمتون نشون دادم میگم اینا رو ما گذاشتیم که آقا ایران مهر تو داستان سر جایگاه ایران ویش ما می‌خوام اینو رو, رو بکنیم بل. به هیچ عنوانی 8500 درست نیست درست چون بنده بندی بویه. ما دلیل نمیشنی خب خب دلیل. دلیل, دلیل, دلیل, دلیل مطرح شده دلایل صدا زغب میشه میمونه دیگه ما که فرار که نمیخوایم بکنیم که بعد خدمت شما عرض شد که اینکه که میگید انسان بی‌خاطر نیست برای تمام اینها همش درک واکاوی میشه یک دوهمندش ما هیچ زمینش کدوم میشه. تیم پروژه تحقیقاتی خب در کوم دانشگاه در, در کوم مقاله همش می... رو خواهد شد این که اصلا نشود که من اینا معنی خب ما دوستان قول داده بودیم که اگر نعم. دانشگاه ها واز بشه ما تیممون رو درست میکنیم هفته اول ما این کار کردیم یعنی حتی نذاشیم به هفته دوم کشیده بشه همون هفته اول قول همایش هم از آید دکتر منشزاده مدیر گروهمون گرفتیم این یک دوهمندش که اگه قرار بگیم و هم تهمت بزنیم که آقا داریم اقفال میکنیم مگه روزوائلر من میشناختم این و مگه یا اون مگه وندی داده منو خونده بسید چی در هندوستان سرمارده آقا داره در ده جای اوسا اومده ام که نه سرما بود نه گرما همهشون اینو دارن میگن در هندوستان هم در زمان جنفید نه سرما بود نه گرما ما بریم تفکر ذهنی خودمون بکنیم میگید چون در زمان من گفت گفتم خدمتتون که سرمایه مثل اردوی در اون عادی بوده یک دووان ریشه شناسی من بارها گفتم اصلا بدون اسوش شناسی بدون ریشه شناسی بیراه رفتنه شما بد ببینید کلمه ماه وسه چی در تمام هند و اروپاییه یکیه چرا اونا میگن مون ما میگیم ماه هندی ها میگم ماس ریشه ما یعنی اندازه‌گیری کردنه یعنی هند و قبل از اینکه خورشیدو بخوان بسنجن با ماه مثل سال, قمر... سال قمری داشتن شما چطور انتظار دارید بس که از خورشید استفاده کنه برای اصن ارتباط این دوتا مطلب با هم ارتباطش که شما میگید آقا خلشی... سه قرص و, م... م... م... اصلن... اصلن... بینید... و نسبت ز... به این داستان زمن... من به خاطر که دارم به خاطر اینکه آقا اونجا سرمایه عادی ب... سرمایه مثل اردبیل عادی بوده مگه ما یه خط سند داریم بعد... آزمایش کردیم همین چیزیو ب... ب... ده اوستا داره میاد میگه میگه آقا اونجا نه سرد بود نه گرم چجوری بعد بگه؟ بعد سخت سرم... بعد... بعد سرم... بعد شده بعد همین این مورد سرسا... سرسا... این سر سرسا... نخه این اصلی خواندانه 300 سال هرگز افسانه ای نیست هرگز اسطوره ای نیست ما بچهای زیست شناسی کارو کردیم حالا گفتم خدمتتون ورنجون انجام زیست شناسی داریم میخوایم شروع کنیم به کار کردن اینا دوره کلونی که جمعیت رشد پیدا کرده دیگه جا ندیشه واسه زندگی دیگه اوسود چجوری تو ده تا بند میاد توزی میده آخ كريم دو دقیقه وقت اینو ببینید یا بعد به حرف استادای هر رشته گوش بدیم من. یا بگیم اونا سواد ندارن داریم اخوارشو میکنیم این حرف آخره منه تا این لحظه یک خط مثل در تایید این حرف چاپ نشده و مطمئن باشید هیچ انسان برنی بشر نوسنگی چنین چیزایی نمیتونه گزارش کنه همونطور این داره نکرد اشتغال شما این بیفته... اینکه فکر میکنید که همه این اتفاق حافظه با حافظه رسیده دقیقا این اتفاق رسیده اصلا همین چیز این نیست باید این اتفاق رسیده اصلا همین چیز این نیست ما اینو با چی میگه؟ ما یا نافذای بیاد بالا ضبط کنه بعد تحویل بده دیگه. با چه, چه مکانیزمی این, این این سرما با چه مکانیزم به ما رسیده تو ذهن بشر مونده؟ ببینید ما در زمان کیومرس، معلومه گفتن که آقا مثلا گاو یک تا داده مثلا افتاد چپ این افت مثلا کیومرث افتاد سمت چپ گاو یک دار افتاد سمت راست آدم آدم میشینه فکر میکنه میگه آقا این چیه؟ این آمار یک فگف فراده اجزم... ایران باستان هست اجازه بدیم آخون... یک دفعه آخون... نمیشه اینو مرسی فقط بفرمایید همینو قسمت سیو دقیقه فرمودید خیلی جدی میگیرن ایشون یه فرقه اص... اصلا موضوع فرقه نیست اصلا فرقه نیست چیزایی که داره با زیس شناسا دارن اصلا کدوم زیس شناس؟ در کدوم دانشگاه اینا حرفه اسم باید بردشه ببینید زیس شناس از این دفعه من میتونم با... بزنم اینا بعد مورد اس بیات آقا شما انجام شده شما تو کتاب بفرز. خودت تو پایان نام خودت بنویسی اصل یخمندون به حافظه بشر اول. حافظه بشر رو نگار داشته برگرد تنشید... اول به هر حال حافظه یک من خاص نمیگاش شما تو کتاب خودت نوشتی که حافظه بشر این حفظ میکنه من هرگز هم چیزی نمیشم اگه نوشتم بعدش اگه اشتباه باشم اشتباه کردم اگر نوشته باشم اشتباه کردم ولی من مطمئن است که الان بشر کار ده جای دیگم اشترا داره جای دیگه ما داریم میگیم اینا یک چنینجز امکان بذیر است آیا بشر میدونست الان وقت برنامه الان تموم شد فقط این این اموان سوال میگه آیا بشر میتونست رو دید رویدن کوه با عنوان زلزله ببینه این دانشمن متاخر به رسید با علم به هم دقیقا همینه این ادامه, ادامه نگ... دقیقا ادامه, ادامه همه بس رو تو مسابقه ما روز همایش. بله، به امید خوب. خیلی متشکرم و خیلی هم لذت می‌بریم از بحث داغ دوستان من در قسمت گذشته و به اضافه‌ی اون میان برنامه‌ای که بعد از 21 پخش شد، من عرض کردم این بگو گفتگوها همش ادامه خواهد داشت چون اصلاً نمی‌خوایم مصنوعی قبل از برنامه و قبل از نشست با هم به توافق مصنوعی برسیم. باید بر اساس اسناد و اسناد خودمون رو از فیلترهای تمام علوم باید رد بکنیم، بی‌رحمانه نقد بکنیم تا اینکه برای محیط های اکادمی که بین حرفی برای گفتن داشته باشیم چون اگر بخوایم به قول محرف الله وختکی و به قول آقای افشین قطبی سروربی سابقه تیم ملی همینجا علی اصغری بریم جلو واقعا نمیتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید همینجا اسناد خودمون رو فیلتر از فیلتر رد بکنیم مباحث خودمون رو پجنش های خودمون رو بیرحمان نقد بکنیم سوهان بکنیم. و به اضافه این قربال بکنیم تمام اون مواحسی که با اسناد و با منطق تاریخی با منطق علوم دیگه و با میتودولوژی و ترمینولوژی علوم دیگه سازگار نیستند رد بکنیم و بعد حرف رو ارائه بدیم و لذا شنوندگان گرامی مکدر نشن برای چندین بار عرض می کنیم این بگومت ها کاملا طبیعی و از این بدترش هم خواهید دید شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 32 به خداونده متعال می